فصل نهم خلاصه این که کازیمو علا فرار شگفتنگیزش کما کمابیش مانند گذشته با ما بود تنها زندگی میکرد، اما از آدمها نمیگریخت. حتی برعکس می میتوان گفت که نمی دور از مردم سر کند در جاهایی میپلکید که روستاییان در کار شخم زدن و درو کردن و پهنن باشتن بودند و معدبانه به آنان سلام می کرد. کشتگران شگفت زده سر بلند می کردند و او بیدرنگ جای خودش را به آنان نشان میداد. از آن عادت قدیمی دورانی که با هم بالای درختان می رفتیم و خود را پنهان می کردیم و رهگذران را دست میانداختیم دیگر چیزی در او به نمانده بود. در آغاز روستاییان که می او آن همه فاصله را بالای درختان پیموده است در می که با او چه کنند آیا همان گونه که با دیگر بزرگزادگان زادگان میکردند به احترامش کلاح سر بردارن یا اینکه او را چون ورگردی بتارانند؟ سپس به او عادت کردند و رفته رفته با او درباره کارهای خودشان یا وضع هوا گفتگو می حتی چنین مینمود که از بازی او خوششان میآید. بازی بازیی که بهتر یا بدتر از دیگر سرگرمی های مردمان دارا نبود. کوزیمو زمان درازی را بالای درختی می و کار کردنشان را تماشا می کرد و از آنان درباره کود و بزر می میپرسید. تا زمانی که روی زمین بود هرگز فرصت چنین کاری را نیافته بود. نوعی شرمزدگی زدگی از آن میشد که با روستاییان و خدمتکاران گفت وگو کند. اما اکنون از آن بالا می توانست به آنان بگوید که آیا خط خویشی که میکشند راست است یا نه؟ و گوجه فرنگی های همسایه رسیده است، یا نههنوز گاهی دیگر داوطلبانه معموریت های کوچکی را برایشان انجام میداد مثلا به سفارش برزگری به خانه او میرفت تا به زنش بگوید که به سنگ سوهانی نیاز دارد. یا میرفت تا بگوید آب را برای فلان باغ برگردانند در راه انجام چنین مأموریت‌هایی اگر چشمش به دستهای گنجشک میافتاد که در گندمزاری می نشستند سر و صدا میکرد و کل و حشراتکان میداد تا آنها را تحارران در گشت و گذار در جنگل و بیشه به آدم کمتری بر خورد. اما این برخوردها اثر بسیار ژرفتری تری بر او داشت. زیرا در آنجا کسانی را میدید که هرگز در جای دیگر نمیدیدیم. در آن زمان توده ی انبوهی از مردمان تنگ دست کوچنده در جنگل ها زندگی می کردند. خانوارهایی بودند که در گریز از قهطی، کشزارهای خود را رها کرده بودند و با کارهای گزرایی چون زغالسازی، مسگری و بخور و نمیری دست و پا میکردند. کارگاه هایشان در هوای آزاد بود و در کپر میخوابیدند. در آغاز با دیدن پسرک پوستین پوشی که از بالای درختان میگذشت، همه میترسیدند به ویژه زنان که او را دیوانه میپنداشتند. اما رفته رفته با او دوست شدند. کوزیما ساعتها به تماشای کار آنان می پرده. و شبها هنگامی که گرد آتشی می نشستند بر شاخهی در نزدیکیشان جا می گرفت و قصه هایشان را گوش می کرد که روی تکه زمین هموار و خاکستری رنگ کار می کردند، از همه بیشتر بودند از شهر برگامو می آمدند و کازیما زبانشان را نمی فهمید. از همه نیرومندتر و نجوشتر و میان خودشان هم بسته تر بودند تایفه آنان در همه جنگل پراکنده بودند و خیشی ها و پیوندها و درگیریهای ایشان به همه جا کشیده میشد. گاهی کازیما رابط آنان میشد. از گروهی برای گروه دیگر خبر میبرد و پیغام میرسند. برای این کار میکوشید پیامهای آنان را با همان گویش غریب به خاطر به بسپارد و بیک و کاست بازگو کند. گویشی که یادآور فریاد پرندگانی بود که صبح از خواب بیدارش میکردند. با آن که در همه جا چو افتاده بود که یکی از پسران رندو بالای درختها زندگی می کند و پایین نمی پدرمان همچنان می کوشید این خبر را از کسانی که از دور دست می پنهان بدارد. خانواده کونت استومک که برای سرکشی به املاک خود در بندر طولون به فرانسه می رفت، در سر راه خود به دیدن ما آمد. نمیدانم از این دیدار چه انگیزهی داشتند. مسئله مالکیت میان. یا اینکه در جستجوی سفارشی بودند تا سمتی برای پسرشان که اسقف بود دست پا کنند. هرچه بود به پادر میانی باران رندو نیاز داشتند. و همانگونه که می توانید حدس بزنید، پدر من نیز هزاران نقشه در سر میکشید تا از رابطش با آن خانواده برای بکرسی نشاندن ادعای سروریش بر امبروزا بهره بگیرد. میهمانی شامی که برای آنان در خانه برپا شد، بی اندازه چون طارف ها و خوش هایشان پایانی نداشت. پسرشان را نیز همراه داشتند که جوانکی غرتی و برمان مگوز و کلاهگیز به سر بود. بارون پسرانش را یعنی تنها مرا معرفی کرد و گفت گمان نمیکنم بتوانید دخترم تفلک باتیست را ببینید. خیلی گوشه است. خیلی مؤمن است. هنوز این را نگفته بود که دختری احمق سر رسید. همچنان سربند راهبگی اش را به سر داشت اما پیراهنش را با توری و نوار آراسته بود چهره اش را بزک کرده بود و دستکش توری به دست داشت البته باید به او حق داد از زمان ماجرای مارکی دلاپوم چشمش به هیچ مرد جوانی جز خدمتکاران و مهترهای خودمان نیفتاده بود جوانک پسر کونت استوماک با دیدن او پیاپی می میکرد و باتیستا با صدای گنگ جیغمانندی به او پاسخ میداد و بارون که از مدتها ها پیش دور دخترش خط را کشیده بود، دوباره سرگرم خیال پروری درباره او شد. کونت به این همه بی اتناب بود. گفت شما یک پسر دیگر هم داشتید، مگر نه بارون آرمینیوس پدرم گفت بله، پسر بزرگم، به شکار رفته. دروغ نمی گفت در آن دوره برادرم همه روز را در جنگل می‌گذراند و تفنگ به دست در پی شکار خرگوش وحشی و پرنده های درشت بود. توفنگ را من برایش برده بودم. همان توفنگ سباکی بود که باتیستا با آن موش شکار می کرد. مدتی می شد که دست از این کار برداشته و آن را به میخی آویخته بود. کنت از شکارهایی پرسید که در ناهی پیدا می شد. باران سرسری داد. زیرا از آنجا که آدمی کم صبر بود و به دنیای پیرامون خود اعتنایی نداشت، به شکار نمی رفت. با آنکه اجازه نداشتم در گفتگوی بزرگ دخالت کنم، به زبان آمدم و چیزکی در این باره گفتم. کونت گفت تو از کجا می دانی کم؟ گفتم برای اینکه شکارهایی را که برادرم می زند، من جمع می کنم و برایش می برم. پدرم به میان حرفم دوید و گفت کی به تو گفت حرف بزنی؟ برو بازی کن. در باغ بودیم. شامگاه بود. شامگاه تابستانی. هوا هنوز روشن بود و کازیما از راه رسید. آسوده و بیخیال سپیدارها و نارون‌ها را یکی یکی پشت سر میگذاشت. کلاه پوست گربه‌اش را به سر داشت. تفنگش را به شانه یوسیخی را به شانه ی دیگر آویخته بود. پاتاوه بپاداشت. کونت ایستاد و سرش را برگرداند تا بهتر ببیند. با خنده گفت آهای! <تصفيق> کی آنجه است؟ این کیست که از بالای درخت ها میاید؟ پدرم دست پاچه گفت چه شده؟ نمیدانم. به نظرتان رسیده. به سویی که کونت نشان میداد نگاه نمی کرد. بلکه می کوشید با دیدن چشمان کونت بفهمد فهمد که آیا او به راستی پسرش را دیده است یا نه؟ در این حال کوزیمو درست به بالای سر آن دو رسیده و با پاهای از هم گشوده روی شاخه ایستاده بود. آها پسر من هست. بله کوزیموست. بچه هم دیگر. آن بالا که خود شیرینی کند. <تصفح> <تصفح> پسر بزرگتان هست؟ بله از آن یکی بزرگتر است. اما چندان. هنوز بچه چند بازی می کنند. اما با چه مهارتی روی شاخه راه می روید؟ آن هم با این همه تسلیحات؟ <تصفيق> بازی می دیگر. دشواری نقشی که پدرم بازی می کرد چونان بود که چهرش سرخ شده بود. گفت آن بالا چه کار می کنی؟ آن؟ پایین؟ بیا به جناب کند سلام کن. کوزیما کلاه پوستیاش را از سر برداشت و گفت سلام عرض می کنم جناب کنت کونت به خنده افتاد. <تصفيق> خیلی خوب. ولش کنید جناب بارون. آفرین. جوانک قرتي هم گفت: جالب است. خیلی جالب است. چیزی از این بهتر نمیافت که بگوید. کوزیمو بالای شاخه جا خوش کرد. در موضوع بحث را عوض کرد و برای برگرداندن توجه کند به پرگویی پرداخت اما کند گهگاه سرش را بلند میکرد و نگاهی به کزیمو می انداخت که از این درخت به آن درخت میرفت توفنگش را پاک می کرد. به پاتاب هایش روغن میمالید با فرارسیدن شب جلیغش را تن می کرد نگاهش کنید بالای درخت چه کارها بلد است بکند آه که چقدر از دیدنش کیف میکنم. آ در اولین فرصتی که به دربار بروم این را تعریف می کنم برای پسر اصخفم برای خاله شاهزادهام هم تعریف می کنم پدرم داشت دیوانه می شد. از این گذشته از دخترش خبری نبود و کنت جوان هم ناپدید شده بود کزیما که برای گشت و سرکشی دور شده بود نفس برگشت دست باچه گفت به سکسکش انداخته به سکسکش انداخته کنت چهره در هم کشید گفت ها چه بد شد پسرم اغلب دوچار سکسکه می شود برو ببین حالش خوب شده یا نه برو پسرم بعد هم به زود برگردند کوزیما به شتاب رفت و دست پاچه تر از پیش برگشت دنبال هم می دوند واتیستا می خواهد یک مارمولک زنده را بیاندازد توی تن او تا سکسکش خوب بشود او هم نمی خواهد به دور رفت تا بقیه ماجرا را تماشا کند آن شب اینگونه گذشت شبی که به همه شبهای دیگر میمانست کوزیمو از همان بالای درختان دورا دور با ما زندگی می کرد. اما آن بار مهمان داشتیم و خبر رفتار شگرف برادرم در همه دربارهای اروپا پیچید و مایه شرمساری پدرمان شد اما این شرمساری بیجا بود کانتستوماک خاطری بسیار خوشی از خانواده ما همراه با و به دینگونه باتیستا نامزده کنت جوان شد. Thank you.